زید در اقبال می نویسد از علائم شقاوت شقاوتمند اون است که شب نیمه شعبان رو احیا نگیره و مفت از دست بده سبوک بشمارد این شب رو چرا برکت مولوده که زمان رو منقلب کرده بعد روایت نقل میکنه که امام صادق فرمودن قبل از ولادتش این نوید رو دادن قبل از ولادتش زمانی که منصوب به اوست متحوله امام صادق فرمودن خدا اراده کرده وعده رو ببینید خدا اراده کرده در شب نیمه شعبان دستی به سوی درگاه او بلند نشود مگر اینکه حاجت او رو بده اراده کرده دست رد به سینه سائل نیمه شعبان نزنه کدوم اراده انما امره اذا اراد شيئا ان قول له کن فيكون چرا این اراده رو کرده چون ولی امر به دنیا اومده رو این حساب